صفه 1081 پریبانه پاسخ داد انجام کاری به این سادگی مشکل نیست که تو به خاطر آن خود را این همه آزار دهی علت این که تو این همه ناراحت شدی این است که تو و من یکدیگر را به خاطر یکدیگر دوست داریم نه به هیچ جهت دیگر و تو به خود اجازه نمی‌دهی چیزی از من بخواهی وگرنه انجام خواسته سلطان امری پیش پا افتاده است و من میتوانم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهم ده تو مطمئن باش به خاطر تو هر خواهشی از من بکنی انجام می دهم. در این هنگام پریبانو خزانه دار خود نور و جهان را صدا زد و به او دستور داد بزرگترین خیمه ای را که در خزانه من موجود است اینجا بیاورد در یک لحظه نور و جهان خیمه را آورد یعنی دست خود را باز کرد و خیمه در کف دست او بود سپس پریبانو آن را گرفت و در دست شاهزاده جای داد شاهزاده که شنیده بود پریبانون گفته از بزرگترین خیمهها و حالان که خیمه به بود که در میان انگشتان انسانی جای می خندهاش گرفت و تصور کرد با اون مزاح میکنند وقتی پریبانو به حیرت و ناباوری شاهزاده پی به نورال جهان دستور داد خیمه را در فضای باز بگستران تا وسعت و عظمت آن معلوم گردد خزانه دار فورا از قصد بیرون رفت و چادر را گشود به طوری که تمام قش و محوطه باغ و اطراف در آن جای گرفت و وسط آن به اندازهی بود که علاوه بر لشکر سلطان یک لشکر دیگر هم می توانست در داخل آن جای گیرد. خزانداد دوباره خیمه را به حالت اول درآورد و آن را به دست شاهزاده سپرد. شاهساده تشکر کرد و گفت این خیمه از خیمه‌ای هم که سلطان خواسته است بزرگتر می باشد. پریبانو گفت خاصیت این خیمه آن است که سلطان می تواند به تعداد لشکریان و افراد خود تادر را بزرگ و کوچک کند و هر تعدادی را که مایل است در زیر آن جای دهد. او روز بعد با خوشنودی فراوان به قصد سلطان رفت و خیمه را به وی داد. سلطان که تا هنگام تصور می‌کرد کار مهاری را از پریبانو خواسته است، با دیدن خیمه به آن کوچکی که به راحتی در میان انگشتان انسان جای می‌گرفت، حیرت کرد. و هنگامی که آن را در فضای باز مجاور قرش گستردند و وسعت فوقولده آن را مشاهده کرد بر حیرتش افسود و از تشکر کرد و دستور داد خیمه را در خزانه سلطنتی جای دهند نهست وزیر و جادوگر و سایر حسودان از مشاهده این خیمه شگفت انگیز در بخت و حیرت فرو رفتند و پیش خود گفتند باید تقاضای دیگری در جلوی پای شاهزاده بگذاریم که او را با مشکل بزرگی رو به روسا سازد که انجام آن از قدرت پریزاد همسر او خارج باشد. آنگاه به سلطان پیشنهاد کردند باید از این موقعیت استفاده کرد و خواسته ها و نیازهای کشور را تامین نمود. لذا تقاضا داریم از شاهزاده بخواهید تا همسرش مقداری آب کشمه شیرها را برای سلطان بیاورد. هنگام شب که همه درباریان برای عدای احترام به حضور سلطان بار میافتند، شاهزاده هم مانند سایرین نزد سلطان حضور یافت. آنگاه سلطان در حضور همه درباریان و نخست وزیر ضمن سپاسگزاری و قدرشناسی بسیار از محبتهای پریبانو بیان داشت فرزندم من خود مدیون مدیان محبتهای تو میدارم و خیمه ای که برای ما ورده ای جالترین تخفه ایست که تا خونون دیده ام آن در خزانه سلطنتی ام. اما چون می‌دانم که تو به من علاقه من با تندرستی و سلامتی من اهمیت زیاد می‌دهی از تو خواهش دارم ای اول سلطان دیگر فکر نمی‌کند سلطان تقاضایی از او بنماید با شنیدن تقاضای دوم سخت ناراحت شد و در فکر فرو رفت به طوری که مدتی سکوت اختیار کرد و در واقع انتظار نداشت دیگر تقاضایی از او بشود ولی چون به پدرش گفته بود حاضر است خواست‌های پدر را در حد توانایی و قدرت خود انجام دهد بلاخره سکوت را شکست و گفت سلطان به سلامت باد از خدا میخوام که عمر دراز به سلطان عنایت فرماید من آنچه در قدرت دارم در اجرای فرامین پادشاه به کار خواهم برد و دلم میخواهد که انجام خواسته های سلطان از سوی خودم امکان پذیر باشد نه اون که لازم باشد انجام آن را از همسرم بخواهم به این دلیل نمیتوانم به سلطان قول قطعی دهم که این آب را می توانم فراهم آورم اما قول می دهم که از همسرم تقاضا کنم آن را فراهم آورد. روز بعد شاهزاده به نزد پریبانو بازگشت و آنچرا که بین او و سلطان گذشته بود برای او بازگو کرد و مراتب سپاسگذاری و قدرشناسی سلطان را هم در مورد خیمه بیان کرد. پریبانو رو به شاهزاده کرد و گفت ناراحت نباشت. هرچرا که سلطان تقاضا کند برایش فراهم خواهم آورد. و من میدانم آن جادوگر پیر این تقاضاها را به سلطان یاد میدهد و سلطان هم به نظریات او توجه مخصوص دارد زیرا او را خیرخواه خود و ملت خود میداند در مورد آبی چشمهٔ شیرها که انجام آن بهراحتی تقاضای اولی نبی باشد آن را فراهم خواهم کرد ولی بدان که چشمه یاد شده در پای کوهی جریان دارد که چهار شیر قوی حیکل آن را پاسداری میکنند همیشه دو تا از شیرها میخوابند و دوتایی دیگر به نگهبانی چشمه میپردازند و بعد نوبت خود را تغییر می دهند اما من وسایلی در اختیارت میگذارم گذارم که بدون روبرو شدن با خطری بتوانی مقداری از آن آب را فراهم کنی آن وقت قریبانه دست بکار شد و کلاف قطوری از تناب در اختیار شاخت گذاشت و به او گفت تو باید دو اسب در اختیار بگیری یکی را خود از می شوی و روی اسب دیگر لاشای گوسفندی را که امروز خواهی کشت و آن را چهار قسمت خواهی کرد قرار خواهی داد و یک بطهی خالی هم به همراه خود خواهی برد فردا صبح به قصری که دور از دروازه شهر است باید بروی وقتی به دروازه آخرین میرسید در آنجا این کلاف تناب را بعد از عبور از دروازه پرتاب میکنی وقتی تناب روی زمین گسترده شد در ورودی کاخ را میبینی و دنبال یک تناب را تعقیب میکنی، تا تو را به چشمه آب شیرها راهنمایی کند. چهار شیر در آنجا میبینی، دو شیر خابیده و دو بیدار. تا تو را ببینند قرهشکانان به سوی تو از از آنها دو شیر دیگر بیدار میشوند. دو هر یک از این چهار قسمت گوشت گوسفند را جلوی هر یک از آنها بیانداز. همین که مشغول خوردن شدند، تو سوار بر اسب خود را به چشمه برسان. و بطری را از آب آن کن و دوباره از همان راهی که رفته این مراجعت کن شاهزاده احمد فردا صبح زود با از پرکت کرد و دستورات پریبانو را دقیقا انجام داد و در زمان مراجعت پشت سر خود مشاهده کرد شیرها او را دنبال می کنند شهستاد شمشی کشید و آماده ی دفاع بود اما شیرها به او حمله نکردند او همچنان به راه خود ادامه داد تا به قصد سلطان رسید وقتی شاهزاده وارد قصر شد بسیاری از افسران بلندپایه در حضور سلطان بودند شاهزاده از اسب پیاده شد به حضور سلطان رفت و با آب چشمه را تقدیم کرد و بعد از بوسیدن زمین به نشانه ادای احترام به عرض رساند این همان نوشابه شفابخشی است که سلطان برای تضمین تندرستی خود خواستند تقاضا دارم این بطری آب را هم در ردیف سایر توفه هایی در خزانه خود جای دهید از پروردگار آرزو می کنم تندرسته همیشگی همیشه گی به سلطان دهد تا نیازی استفاده از این آب پیش نگید پس از آنکه شاهزاده شاه به سخنان خود پایان داد سلطان او را در سمت راست خود نشان و گفت فرزندم از خدمات صادقانه تو متشکرم به که برای فراهم آوردن این نوشابیه سودمند خود را به خطر انداختید من توسط جادوگری آگاه شدم که در کنار چشمه چهار شید قوی هیکل نگهبانی می کنند تا کسی به چشم نزدیک نشود حال با تشکال مجدد می خواستم بدانم چنین روی سبب شد که تو از این همه خطرات در امان باشی. شاهزاده احمد در پاسخ سلطان به عرض رساند من خود جا به شایسته تعریف و ستایش سلطان نمیدارم زیرا چنانچه راه نمایی های همسرم نبود من هرگز قادر به انجام خواسته یه سلطان نبودم شاهزاده توضیح داد که با کمک پریبانو چه مقدماتی را قبلا تدارک دیده تا توانسته به سر چشمه نرود و شیرها را سرگرم خوردن لاشه یه گوسفند کند و سرانجام با پیروزی کامل بازگردد سلطان که سعی می کرد با شنیدن توضیحات شاهزاده خود را خوشحال نشان دهد در نهان غرق در حسادت بود و از در مخفی به اتاق مخصوص خود وارد شد و دنبال جادوگر بدنهاد فرستاد جادوگر به محض ورود به سلطان عرض کرد از جریان پیروزی شاهزاده آقا هم ناراحت نباشید آنگاه تقاضای تازه‌ای را به سلطان یاد داد تا از شاهزاده درخواست انجام آن را بنماید سلطان هم بیدرنگ از اتاق بیرون آمد و نزد مشاورین و شاهزاده رفت و خطاب به شاهزاده گفت، فرزندم، این آخرین تقاضای من از تو است و از این پس از تو و همسر دیگر درخواستی نخواهم کرد. آنچه از تو تقاضا دارم آن است که مردی را که بلندی قد او بیش از 45 سانتیمت نمی باشد ولی بلندی ریش او به هشت زر می رسد و میله آهنینی را به وزن یک خوار به عنوان نیزه دوش خود حمل می کند نزد من بیاوری شاهزاده تصور کرد چنین مخلوقی در دنیا وجود ندارد و با خوشحالی به عرض رساند چگونه امکان دارد چنین موجودی را بتوان در جهان یافت سلطان پاسخ داد پریزاد همسر تو قدرتی موافق تصور دارد و کارهای حیرت آورتر از این را میتواند انجام دهد روز بعد شاهزاده نزد پریبانی آمد و گفت این بار پدرم تقاضایی دارد که انجام آن هرگز امکان پذیر نیست. اگر هم به طبان ترین کسی را یافت، من را ندارم که با نیزه یک خرواری او رو به از تو میخواهم این مرتبه هم که آخرین بار است آبروی مرا حفظ کنی. پریبان پاسخ داد، همسر نازنین، هرگز کمترین ترسی به وجود عزیزت راه نده و تا مرا داری نباید نگران هیچ چیز باشی. این, دوست... این موجود عجیل و بیمانند برادر من است که نامش شیبار است گرچه ما هر دو از یک پدر هستیم ولی از خصوصیت اخلاقی کاملا متفاوتی با من برخوردار است اون دارای سرشتی انتقامجو و خشن است و در برابر کمترین ناملایمی که از سوی کسی بر او وارد آید خشم خود را با خون ریزی فرو مینشاند و آنکس را حتما با میله آهنین خود حلاک خواهد ساخت و تنها سلاحی که با خود همراه دارد همان میله آهنی است که بدون آن حرکت نمی کند و همه مردم هم از ترس آن به او احترام میگذارند. اکنون برادرم را اینجا حاضر می کنم اما نترس. شاهزاده گفت برعکس او را دوست خواهم داشت زیرا برادر تو است. پریبانو دستور داد بشقابی چینی نزد او آوردند. آتشی در آن افروخت و دارویی در آتش دود قلیزی از آن برخاست که چون ابری به هوا رفت بعد از اندکی پری به شاهزاده گفت دقت کن برادرم از دور میآید. شاهزاده نگاه کرد و مردی را دید که با ریش بلند و قدی بسیار کوتاه و میلی آهنین با همان خصوصیاتی که شنیده بود به سوی آنها پیش میآید. و این مرد دارای یک جفت سیبیل تابیده که از بناگوشش به در رفته و تقریبا تمام صورت او را پوشانده بود و چشمان ریزی داشت که در ته کاسی چشم او دیده میشد و پشت او هم خمیده و حالت قوز داشت اگر شاهزاده نمیدانست که این موجود عجیب وزش برادر پنیبانوس بانوس حاضر نبود او را نگاه کند ولی به خاطر برادری با همسر او با علاقه و احترام با او روبرو شد. شد چه بار که نزدیک خواهر خود رسید پرسید مردی را که می کیست پریوان در حالی که به شاهزاده اشاره می کرد گفت این مرد همسر من است و نامش شاهزاده احمد فرزند سلطان هندوستان است و علت آنکه در شب عروسی من حاضر نبودی این بود که میدانستم در آن روز تو درگیر نبرد بودی و نمیتوانستم تو را دعوت کنم و خوشبختانه پیروزمندانه مراجعت کردی و این نخستین فرصتی است که خواستم تو را با شوهرم آشنا سازم سپس برادر نگاه مهرآمیزی به شاهزاده کرد و گفت اینک من در اختیار شاهزاده همسر خواهرم هستم پریبانو هم پاسخ داد سلطان هندوستان میل دارد شما را بدیند برادر گفت بسیار خوب ولی چون اکنون شب نزدیک است فردا صبح نزدیک سلطان خواهیم رفت صبح فردا او و شاهزاده رهسهپار قصر سلطان شدند ولی در طول راه مردم که از شیبار می ترسیدند با دیدن او در خیابان فرار می کردند وقتی شاهزاده و او به در قصد سلطان رسیدند در بانها فرار کردند و آن دو نفر بدون اینکه کسی جلوی آنها را بگیرد وارد بارگاه سلطان شدند شیبار خطاب به سلطان گفت با من چه امری داشتید؟ سلطان به جای پاسخ به شیبار برای ندیدن سیمای او چشمان خود را با دستهایش پوشاند. این دفتر غیر محترمانی سلطان بر او گران امد و با میلی سنگین آهنین خود بر سر سلطان کوفت و او را بر روی تخت سلطنت به هلاکت رساند. آنگاه نخست که در بارگاه داشت مفهود و خیره به نگاه پرداخت و میترسید که او هم کشته شود. شاهزاده به برادر همسرش گفت نخوص وزید مرد نیکیست و راهنمایی های سودمندی به سلطان میداد. ولی زن جادوگر تمام ناراحتی‌ها را به وجود آورد و گروه مشاورین سلطان که بار سر حسادت مانع می‌شدند، حقایق به گوش پادشاه برسد و برای حفظ مقام و بهره‌گیری از بخشش های سلطان، او را علیه من تحریک می‌کردند. شیبار از نخست‌وزیر خواست تا جادوگر و سایر مشاورین نزدیک و خصوصی سلطان را نزد او بیاورد. وقتی به دستور نخست‌وزیر زن جادوگر و مشاورین حاضر شدند، او با همان میله آهنین خود تمام آنها را به هلاکت رسانید و فریاد کرد در صورتی که اهالی شهر سلطنت شاهزاده احمد را نپذیرند به همین سنوشت گرفتار خواهند شد در این هنگام او در سراسر پایتخت و نقاط دیگر کشور هندوستان پادشاه شدن شاهزاده احمد را اعلام داشت و همه فریاد میزدند زندهباز سلطان احمد سلطان جدید هندوستان آنگاه لباس شاهانه بر اندام احمد شاه پوشندند و تاج شاهی بر سرش نهادند و بر تخت سلطنت نشانیدند و پریبانو هم به نام ملکه کشور و همسر سلطان احمد معرفی کردید. چون شاهزاده علی و همسرش نور و نهار هیچگونه مداخلی در اقداماتی جادوگر و سلطان نداشتند سلطان احمد حکومت یکی از استانهای پهناور را به شاهزاد علی واگذار کرد و او به اتفاق نور و نهار به آن استان روانه شدند و تا پایان عمر به خوشی و شادمانی در آنجا زندگی کردند. بعد از آن سلطان جدید از شاهزاده حسین تقاضا کرد تا به عنوان وزیر اعظم با او همکاری کند. اما او زمه تشکر از محبت برادر تاجدار خود اظهار داشت من از این زندگی دور از مردم و حیاهو لذت میبرم و به عبادت به درگاه پروردگار میپردازم. اجازه دهید به این زندگیم ادامه دهم. سلطان جدید هم آرامش برادر را تقدیر داد و به ادامه سلطنت عادلانه خود مشغول شد. سرگذشت دو خواهری که نسبت به خواهر کوچکتر حسادت می‌ورزیدند. در زمان‌های قدیم شاهزاده‌ای زندگی می‌کرد که نامش خسرو شاه بود. این شاهزاده برای آگاهی از اوزای کشور خود شبها همراه یکی از وزیران مورد اعتمادش با لباس مبدل در کوچه و خیابانهای شهر گردش می کردند تا به ناوه های کشور پی ببرند بعد از مدتی کوتاه پدر شاهزاده به عمر طبیعی به زود زندگی گفت و خسروشا به جای پدر بر تخت شاهی نشست بعد از پایان گرفتن مراسم سوگواری و انجام تشریفات تاجگذاری خوشا با همان شیوهه گذشته در یکی از چپها که همراه نخص وزیر خود مشغول گردش در شهر بود به محلهای رسید که مردم فقیر و کمدرآمد در آنجا میزیستند. از یکی از خانه ها صدایی میآمد خصوش و نخص وزیرش از روزنی به درون خانه نگاه کردند و سه خواهر را در آنجا دیدند که درباره آرزوی خود در زندگی صحبت میکردند. خواهر اولی میگفت من دلم میخواهد که همسر رئیس نانوایان پادشاه شوم تا بتوانم بهترین نانها را بخورم دومی میگفت آرزو دارم همسر رئیس آجپس های پادشاه باشم تا بهترین غذاها را بخورم سومی که از همه کوچکتر و زیباتر و تر بود میگفت دلم میخواهد همسر خود پادشاه شوم و برای او فرزند پسری آورم که نصف موهای سرش طلایی و نصف دیگر ای باشد و هنگامی که گریه می به جای دانه های عشق دانه های مروارید فرو بیزد و زمانی که لبخند میزند لبهای یاقوتی رنگش مانند قنطه تازش گفته ای باز شود شاه به قضی آرزوهای خواهر را استثنایی یافت که تصمیم گرفت آنها را برآورده سازد ولی چیزی از نیت خود به نخست وزیرش نگفت فقط از او خواست نشانی این خانه را به ذهن اسپارد و فردا هر خواهر را به حضور او بیاورد. نخوص وزیر هم فردا هر خواهر را به حضور پادشاه برد. شاه به آنها گفت به یاد آورید که دیشب آرزوهای خود را برای یکدیگر بیان می کردید. اینک برای من هم بگویید تا بدونم چه آرزویی داشته اید. خواهر با شنیدن سخنان شاه سر خود را به زیر انداختند. و از شنگونه هایشان گلگون شد شاه که سکوت آنها را دید گفت من قصد مجازات شما را ندارم بلکه میخواهم خواستهایتان را براورم خواهرها به عرض رساندند ما با یکدیگر مزاح میکردیم و آنچه میگفتیم جمعه جدی نداشته است شاه گفت نه چنین نیست من میل دارم آرزوهایتان را عملی سازم همین که سلطان اراده خود را ابراز داشت کوچکترین خواهر خود را به پای شاه انداخت و به عرض رساند پادشاه ها من خوش شایسته همسری پادشاه نمی دانم و از جسارتی که کرده پوزش می طلبم پادشاه گفت خواسته های هر شما هم از جامعه عمل خواهد پوشید مراسم زناشویی سه خواهر با همسران مورد آرزوی خودشان انجام گرفت و جشن ازدواج کوچکترین خواهر با پادشاه با تشریفات باشکوهی برگزار شد دو خواهر بزرگتر که فکر میکردند کمترین تناسبی بین ازدواج آن دو با ازدواج کوچکترین خواهر وجود ندارد شدیداً احساس و حسادت میکردند و با وجودی که به آرزوی خود رسیده بودند از زندگی ناخشنود بودند زیرا کوچکترین خواهر آنها به مقام همسری پادشاه و ملکه بودن کشور نائل شده بود آنها نمیتوانستند این تفاوت موقعیت را تحمل کنند و در پی فرصتی می تا زندگی خواهر خود را تباه سازند. گشت دو خواهر بزرگتر اغلب یکدیگر را میدیدند ولی در شرایط موجود نمیتوانستند توانستند به طور دلخواه با یکدیگر هم فکری و توانی علیه خواهر کوچکتر کنند. آنها به یکدیگر میگفتند مگر خواهر کوچکتر ما چه چیزی بیشتر از ما دارد که ما نداریم و او چه امتیازی بر ما دارد که باید همسر شاه شود و ما نشویم و اگر هم قرار بود شاه با ما ازدواج کند باید با یکی از دوتای ما ازدواج میکرد نه با خواهر کوچکمان دو خواهر دائماً در فکر نقشه کشیدن به زیان خواهر کوچکتر بودند و راهای گوناگونی را برای کوچک کردن او نزد شاه مورد بررسی قرار میدادند و سعی میکردند ترتیبی دهند تا خوشبختی خواهر خدا بر برهم زنند و تا زمانی که خواهر کوچکتر از خوشبختی مند بود و زندگی آرام و راحتی داشت آنها رنج میبردند و بیقرار بودند دو خواهر به دیدن ملکه خواهر کوچکتر میرفتند و به ظاهر با او خوشرفتاری و مهربانی میکردند ولی در باتن میخواستند حس اعتماد و محبت او را نسبت به خود جلب کنند خواهر کوچکتر هم در کمال صفا و مهربانی و دور از هر اندیشهٔ بد بیریا خواهران خود را دوست داشت بعد از گذشت چندین ماه معلوم شد ملکه از پادشاه باردار شده و در آینده صاحب فرزندی خواهد شد. پادشاه و تمام درباریان از این خبر بسیار شاد و خوشحال شدند و خبر بارداری ملکه در سراسر کشور منتشر گردید. دو خواهر بزرگتر هم با شنیدن این خبر خود را به ظاهر خشنود نشان دادند و به خواهر کوچکتر پیشنهاد کردند آمادگی دارند تا هنگام زایمان او خودشان در به دنیا آمدن نوزاد به او کمک کنند. خواهر کوچکتر از آنها تشکر کرد و گفت اگر موافق باشید به آگاهی پادشاه برسانم و اگر اجازه داد با کمان میل در اختیار شما خواهران مهربان خواهم بود. ملکه پیشنهاد خواهران را به عرض سلطان رساند و او هم پاسخ داد من حرفی ندارم که آنها در هنگام زایمان تو را راهنمایی کنند ولی دخالت ماما مفید به نظر میرسد. ملکی اصرار کرد که می دهد خواهرانش مامای او باشند. تا یک مامایی که با او آشنایی ندارد و سرانجام سلطان هم موافقت خود را اعلام داشت. سلطان دو خواهر ملکه را به اوال مامای همسر خود برگزید و دو خواهر بسیار شاد شدند. زیرا راحتی در دربار و سلطان رفت آمد می کردند و ملکه لازید نظر داشتند و به سهولت می توانستند نقشه شون و پلید خود را که از پیش تر کرده بودند به موقع به اجرا درآورند. سرانجام خداوند تسری زیبا چون روز درخشان به ملکه داد ولی نه این چهره معصوم نوزاد و نه زیبایی چشمان او هیچ کدام نتوانست دو خواهر را از اجای نقشه‌ی پلیدشان منصرف سازد دو خواهر طفل بی گناه را درون پتوی پوشانده در سبد کوچکی جای دادند و سبد را در رودخانه‌ای که از کنار قصر ملکه میگذشت رها کردند و اسا داشتند نوزاد ملکه سگ مردی بوده است که این دو خواهر از پیش برای این منظور آماده کرده بودند بعدی هی سلطان از این خبر ناخوشایند فوقالعاده ناراحت شد تا حدی که میخواست ملکه را به هلاکت برساند اما وزیر وانع شد و به اض رسان چنین تصمیمی خلاف ادالت است چون ملکه گناهی ندارد سبدی که نوزاد در آنجا گرفته بود روی امواج آب شناور بود و بعد از گردش و عبور رودخانه از چندین باغ سرانجام به باغ بزرگ حاکم شهر وارد شد اتفاقا خود حاکم در باغ در کنار نحر بزرگی که از آنجا میگذشت مشغول قدم زدن بود که ناگهان چشمش به سبد روی رودخانه افتاد فوراً از باغفان خواست سبد را رو از رودخانه بگیرد و نزد او بیاورد حاکم از دیدن نوزاد زیبا در سبد بسیار حیرت کرد خصوصا که نوزاد زیبا و درشتی هم بود چندین سال بود که او در حسرت داشتن فرزندی روزگار به سر می برد. ولی خداوند نخواسته بود او دارای فرزندی شود. اینک با یک دنیا شادی، شتابان نزد همسر خود رفت و گفت: "موجب خداوند فرزندی برای ما فرستاده است و باید پروردگار را شکر گذار باشیم." حاکم گفت: "از امروز این نوزاد فرزند ما به شما می‌آید و تو باید پرورش و تربیت او را به عهده بگیری." همسر حاکم هم با شادی بسیار این نوزاد را به فرزندی قبول و مسئولیت نگهداری و پرورش او را به عهده گرفت. حاکم و همسرش می دانستند که این رودخانه از کنار قصر سلطان عبور می کند ولی نخواستند به تحقیق درباره نوزاد پردازند. یک سال بعد خداوند فرزند دیگری به ملک عنایت کرد. این بار هم خوهران سیاه دل او رحم به خواهر خود و نوزاد او نکردند و مانند نوزاد اول او را در پارچه پیچیده و در صفتی جای دادن و بر روی رودخانه رها کردند و به جای نوزاد این بار بچه ای را ارای دادند. سلطان این بار تر از بار اول شد و ملکه خود می‌دانست که اگر نخود بدی وسادت نکرده بود جانش به هلاکت می‌رسید. در دومین زایمان ملکه فرزند دختری به دنیا آورد که فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی بود. اما این بار هم دو خواهر بدگوهر او را به سرنجشت دو برادر قبلی دچار کردند و او را به آب رودخانه سپردند اما دو خواهر حسود و بدخاموش کوری را به عنوان نوزاد ملکه به سلطان ارائه دادند از غذای روزگار این بار هم مانند دفعات گذشته این دختر زیبا قسمت حاکم شهر گردید و با این دختر حاکم و همسر او که شدیدن علاق مند اولاد بودند، اماننداره دارای دو پسر و یک دختر شدند، و در نگهداری و پربرش آنها کوشش فراوان به کار بردند پرستار ورزده و دلسوزی را به نگهداری دختر نوزاد گماشتند و خودشان مراقبت شبانه لوزی خیش را برای این فرزندان خدا داده دنبال کردند در هنگان سمومین دایمان وقتی سلطاندید به جای فرزند آن موش را به او ارائه میدهند به قضی خشکین و دلار گشت که فریاد کشید چنین همسری باید نابود گردد اما این بار هم نخست وزیر که مردی فرزانه بود کوشید تا سلطان را از تصمیم ظالمانه خود منصرف سازد. سلطان فریاد می انسانی که به جای فرزان حیوان به دنیا آورد او پلیدی است که جایش در دربار نیست و باید به هلاکت رسد تا همه مردم از گزند او در امان باشند. سلطان فرمان به مرگ ملکه داد و جای فرمان را از نخست وزیر خواستار گردید. با این وجود نخست وزیر و شایر وازرایشاه به پای او افتادند و گفتند ها این ملکه نباید محکوم به مرگ شود زیرا مجازات بر قانون مخصوص طبهکارانی است که جنایتی مرتکب شده باشند در اینجا ملکه موجوداتی به دنیا آورده است که خواست پروردگار بوده و خود او به عنوان مادر هرگز نمیخواسته چنین شود به علاوه دیده شده است که در میان مردم مادران دیگری هم بوده اند که فرزندان غیر عادی به دنیا آورده اند و اینگونه مادران سزاوار دلسوزی و مهربانی هستند نه مجازات و مشقت شیطان قانش را تا ملکه را به کرد نرساند اما به یک شرط و آن این است که قفسی از میله های آهنی به صورت پنجره بسازد و ملکه را در آن جای دهند و در مدخل مسجد بزرگ شهر بگذارند و هر کس وارد مسجد می شود بر او آب دهان اندازد و اگر غیر از این خوند خود نخستوزیر را در قفص خواهد کرد تا با همین شیوه با او رفتار شود نخستوزیر غولدار این مسئولیت را میپذیرد یک ماه بعد از تاریخ زایمان ملکه را درون قفصی جای دادند و او هم این خفت و خاری را در کمال شجاعت بر خود هموار کرد و مردم هم به دستور سلتان هنگام ورود به مسجد بر روی او آب دهان میانداختند خوهران ملکه با پیروزی در نقشه خود شارد شده